شیطان رژیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین صلّ الله علی سیدنا و رسول الله و آیه صیبین قاهرین المعصومین و نه فداهمت و و علی اجارهم اجمعین اللهم فرنا جميع المشتركین ورحمنا بررحمتک یا ارحم الراحمین بحث ما راجع سهر بود کردیم که متعرض عرض روایاتش میشیم و دار زمینه هاشو بررسی بکنیم تا برسیم به نتیجی گیریهاش که واقعا این کار سختیه از تو که مرحوم صاحب وسائل بحث سهر رو حتی در کتب اهل سنت ادهی تو باب حدود رو مثل مرحوم صاحب وسائل تو باب مکاسب محرمه او به خاطر اینکه مثلا اخذ اوجه درش حرام ارز کنم که در کتاب وسائل در کتاب و تجارت ابواب ماید تصابه به ارز کردیم این سه چهار تا علمه که من در اول بحث من ارز کردیم امسافن هم در جامعه هر اینها ها بوده یکیش منجم بوده تنجیم بوده که این بابی 24 دیشن مثلا ستارگان در این دلاره دوندن خب در از این ها ساهر. یکیش باب بیست تحریم تعلم سهر یکیش باب بیست و تحریم و اثیانه و عراف سه تا عنوان دیگه سه تو باب بیست و پنج رو عرافه و کهانه و قیافه رو تو باب بیست و باب بیست هم باب حکم رو، روغی یا روغا رقیر میشه خوند. رقی خود فعل رقاب اون رقیه جمع رقیه رقیه به اصطلاح عبارت از چیزهایی بوده که برای چشم من برای زخمی دور کردن زخم چشم اینها می نوشن این بله این چهار تا باب که صاحب وسائع پشت سر هم ورده که رقیه نوشتن فلسمان البته از کلمه مشتری مشکلی که بوده که در خلال اصطلاحات لغایی برای رو می کنیم تمییز این چهارتا خالی از شبهه نبوده این نبود. ما هم الان در عرفمون هر کسی که کار عجیب قلیم این آقا صاحره میگیم این عرفی ما هم حتیل اون زمان نبود در جاهلیت اگر از یک تحدیلهای دقیقی مذبندیهای دقیقی که کدوم یکی سهره کدوم ی بله قیافه شبیه من از پدر قیافه در اینجا شبیه همین جنیتیک بحثه جنیتیک امروز ماست این مثلا جل... جنیتیک از بایش اندیاهی بشونگه جن... جن... دی انای بله. شبیه اونه مثلا چیزی شبیه این قیافه اما خب مثلا چون برد کارها عجیقه می کنه آم صاحب این چند تا بابه که مرحوم صاحب وسائل ابرده و به لحاظ شرعی هم انصافاً اینها مخالفش یک جای فقه هی. یعنی یک جایش هر کدوم مخالفش یکی چوره فرصی مثلا اگه صحر میکرده چون تصرف در بدن مردم میکرده اونو بالار به کاری میکرده که راضی از این جهر وحلمو پیمه با در هجت و لده فرمودن وحلمو امن اموالکم و دماغکم و اقشارکم توی رواقه احسانت هم دارن حالا من تو ذهن نیست تو خطه غدیبیه تو احتجاج ابشارم آموز یادم اما تو کلمات اهل سنت ابشارم دارم و ابشارکن و بچان پوست و لذا اذه زیادی در ابواب حدود در هر جایی که حد مشکوکه بگین آیه بگین تو تو تسوف کنم زدن هر مقدار شلاق به فرد تلقی حرام حرامه الا ما سبب بزنی به سبب تغییر ابشارکو باید یعنی من الان تو ذهنم مثل اگه این آروم کمپیسر دارن باید تو مسادر شیعه ما افشاره کم هسته نه اما تو مسادر اهل سنت هست و افشاره کم حرامونه علیکم که حرمت کم یا حالافی شهره کم حالافی بلد کم حالاف پیغنبر همه رو تحریف ولی احساب دو بیریم مثلا قیافه علم قیافه چرا مثلا حرامه چون پیغنبر غالی باشه هم برده لسرانش بیده هر کدوم یک مقابلی داره تا اون باز حساب بکنید یعنی باید این حساب رو بکنید که این عنوان حداقل چه اولغانی دقیقا رو بشه و سر و حرمتش را هم باید پیدا بکنید گاهی خودشون هم از سهرامه فرض کردن ایدهی از اهل سنت حتی که عرض علمای شیعه سحر رو به اولوانه کوف می‌دونن سحر رو خوب دقت بکنید کار کهانه ندید مثلا سحر رو به عنوانه چون به این آیه مبارکه و ما کفر بر سلیمان ولakin نشیاطیم کفر درو، چون حمد نه یک خوف یعلمون ما بله. ها. بله. و ما بله ما یک یعلمونه الله علی نعی نما نحن فسیم تلاته. کردند جکاش کن میگی روایات رو که میخونیم و خصوصیات رو چون یه نقداری قرقاسی شده یه مرداری هم باید اون نکتش روشن بشه مثلا ممکن است ما بگیم قیافه باطله نه با ارمانسه. چون قیافه در مقابل قاعده الوردل فراشه طبق واجد از دست اگر این در مثلا چون فراش شد متلعه بستیم مراد اهمه از ازدواج و ملک یمینه کنیز اگر کنیز شخصی بچی اوگورد باید به با همون شخص نصف دادن فالو اون کنیز متهم باشه حالا اگر به علم غیاب مراجعه میکردن بهشون قائف بهش می قائف میگوستن قائف جمع قائف مفرد به قائف مراجعه میکردن میگفت نه این بدنش به اون نمیخوره به این مولاش نمیخوره نتیجتا اون وقتها در کنیزها بیشتر اتهام ها میرفت یه بردگانی که داشتن عبدی که داشت چون ممکنه بود عبد مثلا با کنیز مثلا بگه این بچه این کنیز مال این مولاش نیست مال صاحبش نیست مال اون عرض قیافش مثلا و قول امروز ما دینه آیش اون میخونه اونی که دیگه نکنه اون که در اسلام آمد گفت قیافه حرامه در قرد کردی نکته رو مثلا قیافه رو نکنم مثل کفره چرا؟ چون قیافه در مقابل چی قرار و از در کسی که آمد قیافه رو قبول بکنه در حقیقت حرف پیغمبر رو زیر خواستشی که فرم در در د این خیلی خوب دقت کنید این یک مطلب بعد ما باب 25 رو کامل خوندیم که محمد جرمندی گفت در کل باب 25 انصافا یک دانه روایت صحیح هم ندید در کل باب 25 چون روایت اول باب 25 به دلیل تعبیر مرحوم سال و سال اثر به روایات بابه همون که از شیخ بن اسفند کوفیون قال دخل حسابنا شخصی البته این باید به سند بهتری در کتاب قربل اصناد آمده لیکن اونم آخرش از خود این سبن سختیه که خودش ساهر بوده و اصلا نمی شده سیمشون اینجاز روغا تر می کنم حدیث شماره دو از طریق سکونی که پیش ما کلن اشکال داره که گذرست حدیث شماره سه که در کتاب ایراد و آمده رو بیرند طبت ساهر این همه حدیث شماره مرسل بوده که ج حدیث شماره چهار از کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری و جلیل خطر جلیل ما رو نمی‌تونیم بگیم که گذشته ضعیفه حدیث شماره 5 که خود مردم صدوق یک حدیث دیگری از علیه بن محمد بن جرهور آورده تا اینکه ایشون و بغضی و اداوتی در اهل بیت خودشون حدیث تضعیف کرده مضافم به اینجا چند تا مجهول داره حدیث شماره 6 که از طریق ما هم نیست بعد میگرده آخرش هم به ابو موسای و پسرش و ابحام داره که در ذریق صدوم حدیث شماره هفت از ابو موسای و هفت این وحبه که از اجلال کذابینه حدیث شماره هشت هم که از خراسه نگوانی کفیس که خیلی وزنش خرابه این کل هشت حدیثی که در این باب مرمون سا و سال وزن هیچ کدام از این احادیث با اطلاقا صحیح نیست. حالا اشکال نداره که ما بگیم اجمالان خوب، یعنی اجمالاً صحیح باطل است. از اون چیزی که در باب سهر، نه چون هم نتیجه گیری بکنی، اون چیزی که مرحوم صاحب وسائل در باب سهر و غرن کلا باطل، یعنی سرلش اشعار داره. کل کل باب سرنش اشعار داره. اما در اصحاب سا وسائل مشهد بحث کرده یه یعنی اخلاقی داره چون که روایاتی که مربوط به سهره ممکن مثلا الان یه هشت رو آورده 20 تا در وساط آورده نظر هم داشته با که اونها جایی متفرق آورده برای از اعبار تقدامیتی بکنم آخرشون اول تقدامیتی هم بله یه روایتی ما داریم که شاید نسبتاً خندش بهتر باشه شماره هست از باب سابق یعنی باب نجوم. شماره هست در اونجا این بود سمع و ابا عبدالله علیه السلام یه بود. المنجم و ملعون و کاغن و ملعون و ساهر و ملعون اینجا با عنوان نسه. این تصالفتن نسبتا از اون احادیس دیگریشان بهتره و المقنیت و ملعونه و منعاباها ملعون و آتیل و کرده ها این نسبتا بهتره ما توش اصحاق ابن ابراهیم داره که نمیشناسیمش. مشکل کار ما این اسحاق ابن ابراهیم خیلی اینجا زهت من زهر زور خودم میاد نه اینکه بخواهمیم که نکنه اصحابه مهلرانی به این راهوی باشد علماء اهل سنه او از امام صادق رواسته نهر کنه در حال این روایت نسبتا نسبتا این روایت و ساهر و ملعون از بقیه کل باب بیست و پنج که ایچار اومده این روایت بهتره همه یکی بکنی در باب بیست و اوردا، دیگه مشکل روایت نه از که اصحاب ابن ابراهیم رو که نشناختی، مشکل واجدی که در صفحه 85 از این چاپ مرحوم ربانی که پیش هست، آورده اگر شاپ جیم محمد نگاه کن، باب 15 حدیث 4. باب 15 و ابواب ما یک تا حدیث 4 این اینجا ما خوندیم شماره 7 خوندی، این از کتاب استصال صبوک می نویس که اصلا روایت آورده که غالبا در این دوسف یعنی دوسه مصنفات ایشونه در فریق هم نه آورده در کتاب کافی این حدیث آمده در کتاب کافی لکن انا ابي علي اشريف شماره چهار با و پونزده انا حسن بن علي مثل همونه سر یکیه انا حسن بن علی هم همین اسامه روایت مون همینه ان نصر بن قابوس اینجا نظر نوشته نه از غلط ان نصر بن قابوس شخصیت اجتماعی بوده شاید بشه ایشون قبولش کرد این همونه سند با سند حساب یکیه سند خسال مثلا از طریق طهوار نقل کرده یک از طریق احمد ابن ادریس نقل کرده یکیه تمام سند با اون یکی یکیه و اونجا این جور داره قال سره تبع عبد الله یقول المغنیت من اون ملعون من اكل مشکل مشکل دیگرش از صاحب و ملعون و از کاهن و ملعون توی این نه آمده توی این مهد دقیقه فرمه چیم خواهی؟ نصوتر نصوت باقیه احادی این حدیث بهتره اما اون مثلی که به درد ما نهنه این میخوره با متن خسال صدوقه و این واقعا هم خیلی عجیبه این صدوق رحمت الله در اکتا فقیهش نهارده خیلی عجیبه چقدر اینها دقت های زائدی رو در شناسه حدیث به کاری بوده و راهم در این آن تأثیر دارد. این راجع به باب 25، اما راجع به باب 26 حدیث اول شوخوندیم که بابو سیدان میخواید که برات به سر نیز، این رواج کاملا ضعیفه مال شاید ببینه باب. حدیث شماره دوم این باب، توش علیه نهایی هم داره که زلیفه علیه نهایی هم زید باتقریبی، میتونم خوب. از علی ابن عبی حمزه مرهوم ابن عبی عمر مره کرده اگر مثلا یک شاهدی باشه و بعد هم در خساله کتاب های درجه حدیث شماره 3 <تصح> <تصح> حالا یک اختلافی هم بین این متن با متن مطبوع هم هست دیروز بعضیش اشاره نکردم تو هاشه خودم نوشته دیگه خیلی اون بحثی ریدشم مثل شمایه سه دربا بست محمد ابن ایدریز در آخر سرائل مقدر این کتاب مشیخه علی حسن محبوب برس کردیم مرحوم ابن ایدریز در آخر سرائل برمان نوادر و برمان مستقفات اسمشی نوادر گذاشته ادهی از دربایت رو و دیگه تکرار نکنیم از کردیم انصافاً با مراجعه یعنی که ابن ایدریز خودش حال مقال حجیل خبر نیست اذا بعضو گفتن چون ابن رزید خبر علمی را قبول می‌کنه این رواضی کوزه علمیه نه خلاف واقعه اون چیزی که ما در نوادله ملیسیو سر و مستفحات انرژی می‌بینید ایشان حدیث شناس نیستن خیلی ضعیف در حدیث نقداً من کتاب المشخه ایشون تاریخ به کتاب ندارن دیگه میمونه به شهرت کتاب بله کتاب مشخه اصلا به نشود الا اینکه ایشان تاریخ ندارن بلکه ایشون ضعیفند به شهرت کتاب هم نمیتونن اکتفا بکنید اگه ایشون کتاب شناس بودن یا مثلا گلتفت بودن باز میشون قبول بکنم این حیسم حیسم این واقض جذریه این حیسم در اینجا این ها اشتباه نشه حیسم این واقض جذری بد نیست بله آل قلقل عبی عبدالله امنه اندنا به جذیره ظاهره جذری و جذیره همین جذریه نصاده به جذیره مراده از جذیره ارض کردن از حدود مثلا سامرا بریم مثلا دیله کجاستو دیجه بریم به بالا همین منطقه کلا آپ کردستان عراقیه شمار عراق اصطلاحا ما بین عراق میشه و ما سوریه در جغرافیای قدیم اینا اصطلاحات دیگه حالا شده ترجمه در جغرافیای قدیم ما بین عراق عراق تقریبا منتهی میشد به تکریت در جغرافیای قدیم هر تکریت اصلا جزء عراق نبود تکلیت رو نوشتن اولین شهر از جزیره است. از به اصطلاح تکلیت شروع بکنیم بیریم تا منطقه کردستان اراب تا باید از این به سوریه از مثل شهرهای معروفی هم داشته که الان نیست مثل شهر زور و آمد و اینها خود آمدی معروف صاحبه بارالتکر ما لهم جزیره هست شهر زوری ها مال جزیره به اینها جزیره به این منطقه جزیره میگفتن شون ما به این از اجربه هر حال، مراد را در جدیدره این منطق است کردان اصاحح شماله اراق و منطقه کوردستان یا به اصطلاح جغرافی قدیم حد فاصله بین دوقطت عاقه اراق و شامات، حد فاصله بین شام و بین اراق رو در این وسطش به جزیره رجل از آقا و ما اخل مننیعتی اسله و انشه یص رفت اوشه به ادارک ف ننشعللو خبر میده ازخ، این خبر دادن از اشیاء مصروغه مصر این مشکلش این رو اصطلاحا در اون زمان به بعضی هاش عراف میگفتن بایی هم کاهن میگفتن عراف از ماده عرف هست مرادش این بوده عراف کسی بوده که ازدعا میکرده که من جنی هست پیش من میاد و اون رو میبینم و این جن به من خبر میده این جل رو استراحه در قدیم بهش رعی میگفتن با را و حمزه و یه یه مشدده کار لهو رعی و رعی معنیش اینه روما اخبر من یاتی اسئله عن الشی یسرغ او شب هزاله فسئله فقال الابو صادق تامل الله علی قال رسول الله صلی الله علی من مشى الى ساحر یعنی عسرم که مثلا چون نزدیک هم بوده من مشى الى ساحر او کاهنه او کذاب حالا این کذاب باید عراف بوده یصدقه به ما یبوده فقط کتر به ما انزلال الله من کتاب این کف کفه ساعت زاد به هر حال وقتی مراد این بوده که گاهی میومد میگفته آقا من مثلا فرشام گم شده گفتن فرش تو خونه فلان خب اون قادر میگه آقا میگه که من میگه نه این فرش من دو دیرون برادیشو ببینید مشکلش چی بوده مشکلش این بوده که تصویر اون شخص کاهن یا عراب یا به تعبیر روایت سحار صاحب کفر به ما انزالالله علی رسوله همونده چون در معامل قاعده, قاعده ید نیامونده بوده آف هستید خونه خونه هستید که پنه مال توس بردن اونجا بابا رو بکنیم من خود رو برای توس بردن ملک منه چرا من کجا دوزی کردم نستید خب این همین گفته نه آقا این آقا صاحبی که رسیم خدمتش برای این کاهن ها یا ها، خیلی منزلت اجتماعی داشته چون با یک زحمتی اجایی بود بعض از از فاصله های مثلا 500 کیلومتری 1000 کیلومتری می تا به این کاهن یا سحار درست علای حالا کاهن رو فرق اساسیش با عراف درید می که چون یک نوع اتصال با ارواح جزئیه داره کاهن نه اتصال با ارواح کلیه و عراف هم کسی می دونستن که یعن خیلی با هم نزدیک بودن گاهی با هم دیگه اشتباه میشد. این واقعیت هم به لحاظ اینکه مسترش برای ضعیفه یعنی از سرالر آمده و طریقش رو کتاب مشیرخیه هستن محو، خود مشیرخیه کتاب خوبی، این ما مشکل نداره. یعنی میشه قبول که می هیسند و میشه قبول که. باب و بیسوشیش پس کل باب بیست و بیسوشیش هم متأسفانه احادیثش مشکل سندی داره، ماستری دارند یا سنادی یا ماستری. باب رقی چون رقی رو و رقی رو رقی رو اگر باشه مصدر رقا اگر باشه معنی جمع رقیه رقیه رو هم انشالله طوبیاتش عرض میکنن محمد المعالی بن الحسین در کتاب وادم بازم خسال ان محمد بن الحسن مراد ابن الولید استاد ایشان ان صفاق ان الگارین حاشم ان نوکلی همون کتاب سرکونیست دیگه ان سرکونی هر چه مشکل داره از جعفر ابن محمد بله عن ابي ان نبی قال لا رقى حالا اینجور شکلی اللا اللا ای این جور چیزا قرائتش کمی مشکله مثلا هر کسی بی یکی اونجور اون جور خونی کہ اون جای نرسونه مثلا لا اله الا الله و الرسول اگر مثلا در یک بحثی موسول متعرض شده این لا رقیه میتونید بخونید به واسط مصلح یعنی کسی رقیه نکنه طلسمات رو به اصطلاح یکی هم میتونیم به عنوان لا رقا بخونیم مثلا چاپ کردین جو محمد ان الله تعالی نسخه این رفرنش لا رقه نیستو رقه روحانی هسته شو بنظر نسخه شو لا خد خد اگر رقیه بخواد بشه در سه چیز فی همه. همه معنی تره نیم دارم که آلوه چیم چاک کردن همه چا همه همه, همه. این غلط این همه این غلطه صحیحش همه به زمه های حتی و فتح می تشیدن نداره همه نکنی همه همه یعنی حیواناتی که سم دارن نیسته ما رو اغرب اینا مرادشون اینه همه صحیحشه چون خیلی جا مثلا غلطه همه می کنن. نه پس همه به معنی این که غلطه اینجای کلم چاک کله همه صحیحش هم تا که شما نهارو فرمونی همه هست و این حدیث من سابقه در از هم محادی سکونی در میان مسادر سنت هم هست حتی بعضیش هم به علیه نهاری خوابه نسبت داده شده دیدید مثلا این در کتاب ابو داوود و حاکمد از انس نهارو کرده همین دو در کتاب ابو داوود از انس ابن م خدا، علی درست دارم که فهمیدن که هست ما تو اون گفت، مثلا اداره ماجری کوفه بوده این کتاب رو از کوفه به قم آورده. و شما ها دیدن که ما رو که نوحلی ساکن ری شد اواخر عمرش. برای ما یک کلمه اضافه نمیدونیم از اواخر عمرش آمده ری از. شما جداگید که برده قطعاً محروف نسخه کتاب سکونی هم پیش اتخار حتی توزید حتی بین اتخار بغدادی ما پیما خیلی مهمه یعنی اتخار بغدادی ما اصلا کتاب سکونی با اینکه که بین بغداد و کوفه فاصله ای از کوفه نقل نمی کنن از این همه از نسخه مشهور ترین نسخه کتاب سکونی بین اتخار ما اطلاقا نسخه از همه مشهور تن که بودم از نوپلی گرفت او اینه این به معنای به اسرا چشم کسی چشم بزنن او دم لا یرقه چجور چاپ کردن در نسخه لا یرقه چاپ کردن با همزه این صحیحش رقه هست با همزه هست این با اینجا یرقه ها نمیشتی هم غلطی دوسط تا غلطی داریم نبارد اینجا صحیحش الا فی همه همه او اینه امدن لا یر قرآ با هنزه رقعه خودش رایی استادن و خونه در اصطلاق سبقه قدیم جزه عدویه که داره عدویه مرقیه موردشان عدویه مرقیه دواهایی که مثلایی که خون بیسته رقعه دن یعنی ارقا مرقیه از باب افعان یعنی جلو خونه بگیره جلو خون بزیره بند به هر حال این روایت رو الان قبوله خیلی مشکل رقعه رو که باشه ما به هیچ رکشی الان قبولش سخت رمایتی و خوب دفت بکنی شدید دفت بکنی مرموم سال و ساله چون شبه داشته با بابا حکم روها یا حکم رقی گفتم هر جدیه در رواز چون ظاهری این در این میشه رویه ولو اینه از مشکل داری حدیث شماله دو احمد ابن محمد ابن ارائیم اجیلی ان احمد ابن یهیر قرطان ان بکر ابن عبدالله این حبیب ان, ان تمیون ابن عبدالله این تمیون بحلول ان, بحلو ان حبیب توی چه مجاهی زیادند دو سه نفر از مجاهیرند حضیر واسه دست دو زیاده قال مال ابو عبدالله علیه السلام یک ره نقر فر روها و تا آموزه این روایت دانشی ای که روغا مطلقاً نشون داره نمون ستان حدیث شماره سه محمد بن عمر نادری در کتاب رجالی قاضی وجد تو خط جریله احمد فاریابی که با توضیح داریم الان در مواردی در کتاب کشفی هست با عنوان جبیل. اول سنت جریله فاریابی توضیح دادیم و نوشتیم چاپ جهدی که کشی کردن جزو مشایق کشی نرسی من از چند با جبریرون احمد استاد کشی نیست استاد ایاشیه درد میکنم هر سنبی که در اول در کتاب کشی افتضار شده به جبریرون احمد یا از عیاشی نعبه بکنه یا به نحبه وجاده این جزو مشایق بز نیست معلوماتو خوبی داریم ساکت این جبریرون احمد و هیچی اشون ما نمیشنسی اصلا کلمتیشون نیستده و اصلا از اجایب کاری که مثل مرمون نجاشی و شیف هم کلن اسمیشون کتاب هم داره مفاقه را اهل بستاته برای کتاب هم داره کتاب هم کتاب در اختیار کشی بوده در کتاب کشی از این کتاب نه ظاهرا ظاهرن هم یک نسخه منحطه به فرده به کشی از که ایشون که تا به خط جبایی ده نه هم ما دیگه از این کتاب اینه حتی آقا بزرگم در کتاب از دریه از نشون نبود شیخ حد نجاشی ظاهرن کتاب چون منطقه دور بوده فاریاب و کشف و سمرغن از حوزه ها دور بوده کتاب در حوزه ها متعارف نشده و لیکن معلوماتش خوبه یعنی اطلاعات خوبی داره یه مرداد زیادی از به اصطلاح احادیثی که در کشیه از این کتابه و مشایخ بدی در نگیده این و این شخص کاملا مجبود هیچ اطلاعاتی ازشون غیر همین یوزاکی در کچی هست هیچ اطلاعات خارجی صحبه ابن ابن از ایشان نذ نیست صاحبم میشه موضوع واقع شد ان محمد بن عبد الله بن مهران اگر تو گفتی میشه از خوبا نلمی از خوبا نیست ایشون بله. در بیاد بله ظاهرا این مال کچاو بوده در همین ها ایشون خود محمد بن عبد الله مهران اجازه خط قلوه بله مرحوم نجاشی داره که قال کذاب فاسد المذهب و الحدیث مشهور رو بذاره محمد نبدالله نمی از اصلا در اون کتب الممدوهین و المزمونین مزمونین احتمالا این روز کتاب های بوده که کلن در اخ... به ما نرسیله شاید این از اون کتاب گرفت ان محمد نعلی ظاهرش اینه که ابو سمیله باشه ظاهرش محمد نعلی در اینجا عبود باشه که دیگه اشهر و کذابین پیشی طرف از قلی است آشهر من. آن علی ابن محمد همیشه می‌شود. آن الحسر نعلی، آن عبی شو. الحسر نعلی دنبلم. حسر نعلی نبی هم زی باقی نیفشه. تو نم کذاب. آن عبی، آن عبی صحوا، آن عبی جعفر قال سمت او خدم. خدم خدم ابو خاضل کاظی علی ابن خوصه یه زمان خیلی مفصل است که دیگه تا نمی نمی‌خونم. چون خیلی هم که خیلی ضعیفه. را به جریان ابو خالد کابلی که خدمت امام بوده بودشون از سجاد و جزوه کسانی که میگن جزوه اوائل کسانی که به اصطلاح با تشیع امروز ما آشنا شدن از درجات اسمش ابو خالد کابلی و مسائل بیوگرافی به او نسبت داده شده به نظر ما میاد که این که حدیث خیلی ضعیفه ما که دارو یود خارجی شخصی نام ابو خالد شبهه داریم احتمال میگیم ایشون اسم رمزی باشه یا اید واقعی باشه به هر حال به صورت مفصلی سوش یک نوع به ما روحی هست اما به صورت که این مریض بوده بچی جون گفته باشه مثلا مریض بوده, بوده. بارو که یه راهی نه مثلا اونم تو گوشش بگو که یا حدیث علی ابن حسین که از گوشی از این دارو و خوب میشه بر بعد پول بهش نمیدم دوباره دو منزه مریض میشه بعدا پول میگه واجواجون خوب میشه الانایهان به من خیلی طولانی است ذهن ما میدونه غیر از این سند سندال هم توش کذابین و افراد فاسد هستن احتمال میدونه اصلا کل قصه جعلی باشه این کلی در ابو خالد کابولی از کردم ما یک روایت خیلی مفصلی در عراضی داریم که خیلی ارزشمنده همه ابی خالده کابولی یا نوی عبدالله اون ظاهر ابو خالد هم ما ترسان کابولی نیست در کافی هم آمده آین هم بموناست اون روایت تو بحث خوبی ظاهرن کلن اون بحث ها غلطه باطل همش باطل هم در باطل خب به هر حال وارد اون بحث ها در این اینجا میست الان این سه تا روایت هم در باب 27 بود که معلوم شد که هر سه روایت هم ارزش علمی ندارن بازش خیلی ضعیف بودن حالا دیگه به این مقدار اکتفا بود اما خیلی از این روایت و خیلی هم تحجیباوره که صاحب و صاحب در این باها چون این بحث به اصطلاح مسئله روایات سه و اولا سنظر روشند بشه تا کدوم یکیش اصطلاح ثابت کدوم یکیش اصطلاح ثابت نیست حرص کنم که اما برای تکمیل بحث من بقیه ی روایات رو حتی کل اصلا بحث رو اونه که تکرار شده نمیخونیم از کتاب جامال احادیث چون هم به لحاظ نکات تاریخیش محل استفاده از است و هم به نحاظ به اصطلاح خود روایتش اصلا در جمال احادیث هم مثل خود سابسالت و, و عباب ما یکتتر بهشون آورده و در کتاب جمال احادیث این چاپ جلدی که من دارم 22 در این چاپ آخرش ایشون هم مثل وسائل عمل کرده بابه 27ش رو در نجوم گذاشته که ظاهره میداشته خوندی ها سالت هم البته باز هم روایاتی ایشان در نجوم کامل نیست متاسفانه برد که یک توضیحاتی ثابقا هست کرده چه تو در شیعه یک تحریل و تحولی در نجوم پیدا شد بابه 28ش ایشان سهره بابه 28ش رو مثل صال در صحر قرار داده و اجمالش باب 29 رو در عرافه و کهانه و تحرمت تصدیق عراف و کاهن و صاحر بعد نشه به حکم قیافه مثل صال وسائل کلمه حکم میاره این سه تا بابی که در کتاب جامال احادیش قرار داده آیا ترتیب افواقم آشرا بشن چون یک نکات فنی داره در جامال احادیث اضافه بر این روایات در واسه زیادی از خللی که از نکاتی که مرحوم پای گنجوی اصلا دایر ایشان بر تبیح جمال احادیث شد آیات را هم اضافه کرده چون وجاهت آیات نداره مگر اینکه آی روایتی بیاره که توش آیات است ایشون اولش هم آیات رو اضافه کردند که این خب نافع دیگه در بحث پزشکی یکی شما کفر سلیمان ولکبن شیاطین کفر و یعلمون الناس از سهر اینه یکی قال موسی اتبون للحق لما جاکم از حالا ولا و لا و که از این لا حرمت در بیا یکی هم آگه و عمر ما فی امینک تلقت ما سنعو اینما سنعو و ساهر و لا یفله و ساهر و من در آیاتی که کلمه سه برش به کار شده با مشرفاتش انترن. حدود شهست آیات سه تا آیهش رو نوشتن در مدینه تماما تو مکه آمده شدید یه مقداری که توقف شد در حکومت چون آیات مکی جانب حکومت نداره اصلا لایخله و صاحر اگر تو مدینه بود ممکن بود ازش در بیاری اما لایخله و صاحر تو مکهه شیء غالبا در نمیاد اون امر واقعی و معنوی درنا صاحب خوشبخت نیست یعنی اینطوری نمیشه این خیلی نوسی لطیفیه کی یک آیه واحده با یک تعبیر اگر تو جلد تشریح باشه ممکنه ازش حرمت در بیاره. اما اگر در جلد تشریح نباشه بیشتر جایی است که ملاکاته چون مکيه مقام عقاید و ملاکاته این لایق و صاحب مقام ملاکات مقام تشریع نیست و ما توضیح چند بار دیار دیار گفتیم. از کریم یا جوشنگ گفتم که این ماظونه خیلی هم که <تصفيق> در قرآن این نکته هست یک نکته‌ای که در تشریع در قرآن هست در وضو و ظواهر اخیرا متعرض شدیم در مقام تعبیر همه جا در قرآن از مرحله تشریع نام نمی برنه عذ کریم سه مرحله داریم قبل از تشریع مبادی جذب اسمشو گذشتیم یکی ملاکات یکی حب و بغض یکی اراده و کراحت این هماره قبل از پشیه یه مرحل هم تشریه الان متعارد شما در قانون اساسی، یا مثلا قانون مدنی که می شما مقام جهر رو می که توانی طبالی نیست که مقام ملاکات نوشته بشه اما در قرآن این هرم مثلا ولای افته و ساهر و ساهر مقام ملاکاته حالا از این میل، حرمت در مییاد یا از این میل کراهت در مییاد. دقت این ما در قرآن داریم. مقام حب و بغض، ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. يريد الله بكم اليس، مقام اراده و کراهت، مقام حب و مقام ملاکات در آیات تکرار شده این ما سابقا چند بار تو بحث و خسلت در اصول این خصلت در قرآن در آیات احکام داره. و یکی از اون زوایای معمابونه آیات الاخوام همینه مثلا از این لا یوپله و ساهر حیثاعتها یا از این آیه مبارکه در میاد حرمت سه، چون یوپله خود داره یا از این آیه مبارکه در میاد کراحت یا اصلا هیچ کدوم بگیم آیاتی که نازل مقام ملاکاتن قابل استناد در بحثای فقنی نیستن اصلا قابل استناد نیستن ملاک هست این ملاک در مدینه چجور شد اون بحث دیگر قصیه بحث راجع به آیات و دلالت آیات که به نهره اشاره همه هسته این برد تفسیل عرض میکنم بعد اما روایات اول همون روایات اون ساهره روزه رو پر لبلا تغییر که خوندیم و هرس کنیم سنده دوم روایتی بوده که از اویون خوندیم علی به محمد بن جنب که هر کردیم ضعیفه خوندیم سوم روایت عیونه روایت عیون از همون کتاب تفسیر منسوب تفسیر امام من اصفهانی اینجا از کتاب وسائل تر آورده در داوود احادیث این قسمت رو چون تفسیر آورده دیگه با عنوان سهر و سحر چی کار می‌کردن اکثرن روی تاکید روی سر خیلی عجیبه تو آیات مکی زیاد و در تأکیل در سه یکیشو قصه از که موتاست یکیشنون که خود اهل مکه با رسول الله داشتن که صحار رسول الله سایه و مجلون. یکیش یک مقداری تاکید رو آیات سه این جد از جمله روایاتی که ایشون عبادن در تفسیر عیاشی اینو در رساله نداره اما ترمان که باید سنن ضعیفه مرسله از ابو بشیر معشو از حبی جعفر بله. برای تاریخ‌ماندنی داره که اون اصول سحر و حضرت سلی بله. بعد از هلاکت از در... بعد از سلیمان ابلیس نوشت و در یک کتابی نوشت و پشت اون کتاب شیطان نوشت ها ماوراء عاصکو بر خیال ملک سلیمان و داوود یعنی یک تحلیل تاریخی است که یهو ملاکا کار کردن که اصل سفر رو شیکات نوشت در یک, مثل یک کتاب مسیحی توی قدیم پیدا کردن جایزون کرد در اونجا نوشت و روشم دروغی نوشت که این کار آثیرن بخشیاست که به برای سلیمان داوود من خزنه ال انظار خزانه من عراض کذا و کذا گفتن یک اول کذا و کذا انظار سرغواز داییه احتمال داره این اشاره بده که خیلی از این که اینا میگیشن ایده ای هستن که از سوال میشد اونورا مجربات خودشون مجربت عمل کردن تجربه نذاشته از این دروغا راستشون را حرفا زیاده صبح من درطرف تحت از سری یعنی وقت صبح استشاره کردن فقال کافرون کفر به این معنا سلیمان با همین سهر بر ما پادشاه شد و قال المؤمنون هو عبد الله فقالا الله این کتاب و ک او ماسط و شیاطینعلمونکسسه و ما کم پر این آیه مبار این حدیث اگر الطر سش یهشری راجع بین این داره. این خب تو م با به خوددا آقا برگرده میشه بعد عرض میکن تا بخش ستیش یه حدیث هم میشون از داعام داره این حدیث داعاه در کتب نسبتاً زیادی در سه کتاب از کتب اهل سلنات رسیده و از عبدالله مسعوده این در کتب ما نیامده این روایت رو من تونگه که من دیدم در روایت ما نم آده ان رسول الله انهو نها ان تمام و تول تول بخونید از دوبر هم داریم اون به زن این به کسره نها ان تمام و دقت تول خودش اینطور نبشه. ما تماممون مایعلقون من الکتب و والخرز و غیر ذلك تنیمه در لغت عرب به معنای یک چیزی بود که همراه طرف می‌ذاشتن که مثلا چشم زخم اینا رو دور بکنه اینه می گفتن ایشون نوشته که هم نوشته اگه یک ورقه می‌ذاشتن یا خر از مغره مغره موهره که می‌ذاشتن اسم این تمائمه البته این مطلب روشن نیست از نظر علمی حالا ایشون نوشته اکسو زاده اما روشن نیست چون گفته شده تمائم در لغت عرب اصلا ریگه های رنگیه اما موحایی کهشونگی بعد از خونه ها هستن که آویزون میتونم آبی آبی زیرش هم مثلا که مزورنچیه سپندر سپندر یو چیز تمائم اصلا نویسن تمائم مهره هاست اصلا این نیست کتب نیست این هم یه بحثیز بینشون این همه همونه هستش همونه. چون باید بچه که گردنش که توی مصدر حرام اشاره که این پلمه چیه؟ خب میم تو نوان دارم نه هم نبیانه تمام پلمه لحجه محلی اصلش تمیمن که انما خیال میکردن با این حفاظت ایشان تمام میشه یعنی عمر ایشان حفظ میشه با هم و کردن این داره که ادیشون گفتن اصلا این کتب تمام نیستن این, این یه تصفیل تمامه در... اگر ما از این کتب احل و این اختلاف از قدیمه نه اختلاف جدید باشه. در کتاب عقیل داره از اختلافات قدیمه که حقیقت طمیمه پیش عرب چیه تمائم. در بین عرب راس متوا بچه اصلا راس متوا بچه هنوز به اصطلاح بالغ نشده طمیمه میگوشتن که جمعش تمائم بود. و این متعارف بود دیگه وجود تمام داره که برای افراد بالغ که شجاع بودن دیگه طمیمه میگوشتن. این شعر معروفی که یکی از بزرگان عرب هم هست که شیش تا بچه داشت در یک سال همشون مردن قصیده بسیار زیبایی داره اینیت خیلی از اویون قصاعد عربی خیلی قصیده و از رو در متول مردن و از المنیت رو انشبت از فارها الکی که کل و و لا دادن فعول به تقل و زیل شاطنین و ریحمون اندیل رید دهلا بسیار قصیده اینیت زیباییستن صافت اینج اون آیه اول اولاتن فهامیه یه تاثیر بسیار زیباتر، با چه کوچیکی داره که فقط می‌کنه که غالبا تو مجالس به اسم علی اصغر می‌کنه. نه مرا که اون‌آواز رو جدا چه خودش. علاوه این دو تا از قصاید بسیار زیباتری که در توک افراد گفته شده همینه. همین است. کل تمیمه میگه اگر مرگ آمد دیگه این تمیمه کار نمیکنه. ال الفیق کل تمیمت لا تمیمت. تمیمه لا تنفع. تمیمه در حقیقت همین بوده. یه المناصرتی در کتاب مقامات حریری خواهد به عنوان کنایه بگه من بالغ شدم میگه ولم ما میتت اند تمام و میتت علیل اماعیم میت و میت دو تا رو آورده بباشدن اول میتت ولم ما میتت اند تمام اماسه با مین و قاعد دست دارده سا این به معنای برطرف کردنه ولم ما میتت اند تمام وقتی که تنیمه ها رو از من برداشتن یعنی و نیتت علیل امائن و امامه سر من گذاشتن نا تو به معنی این کنایه از بلوغه از این تعدیل زیبایی در کنایه از بلوغ داره بلا ما میتت اند تماعن و نیتت علیل امائن علایه صحیحش انصافت ها هست کرده این ما بگیم صحیح نیمتون بگیم صحیح اختلافی بود در عرفشون که آیا تماعی شامل نوشته میشه؟ یا تمام خصوص اون مهرای رنگی نیست که عوضون می کنن. و تول تول در وقت ارعین از تقریب در افرسون نه و تول که از عبدالله مسعود به کسر اول و فتح دوم زرد شده ما ستحب و بوقه نسا الا از واجه نه این کلپهانه نوشته کهانه نه کهانه این نیستیه کارهایی که مثلا نوشته مثلا فرسون دعایی چیزی نمیزم فرسون نمیزم چیه اصفیش خاک قبرستونه یه کارهایی که زنها انجام میدادن برای اینکه به خودشون رو محبوب شوهر بکنن این رو اصطلاحاً تول میگفتن در مقابل اون دول هم بود یکی تول بود یکی دول این شب ما خواهیم پیدر خلال دحثا بحثای لغوی هم میخواهیم بکنیم که گاهی در روایاتی از اهل سنت داره که به عایشه یه اخذ جمالی تأخیر یعنی گرفتن از اخذ. لاکین در اینجا مراد اینه جمال یعنی شوتور. عایشه گفته نه، از اول گفتن. بود دهی دوم گفت. ها اخذ و اوغیدو هم اومد اما او اخذو بسته. اخذ جمالی حاجب همین مرادش از شوتور شوهرشه او اخزو یعنی یک دعای سهندیکارم که به زن دیگه میگه پیدا نکنه این دو تا بوده اگر خودش تحریف بوده، فعل بوده اگر ایجاد بغض برای داخل دیگه بوده، دول بوده این دو تا شبیه هم نوشته میشه و فعلش تأخیر بوده او اخزو چون اصطلاحی که دیگه برنامه استعمال نشده، او اخزو جنلی یعنی کاری کنن که شتورم به جای دیگه میگه پیدا نکنه آیش برکی پر میگفنه این رسولا نها انداله نه نهو و داره مایت حق و بویهی انسای و و اشوا و نها انسته هم